فصل شانزدهم چهار سال و یازده ماه و دو روز بیوقف باران بارید گاهی باران ریز میبارید. بیشتر مردم دوچار سرماخوردگی شدند. سراپا لباس میپوشیدند و از قیافهشان نقاحت میبارید. آنها کمی خوشحال شده بودند و به خودشان وعده میدادند که بارش به زودی تمام خواهد شد. و می توانند جشن بگیرند اما نه تنها باران بند نیامد بلکه بر شدت آن افزوده شد مردم از روی تجربه فهمیدند که باران ریز نشان از آن دارد که باران شدت خواهد گرفت گاهی هم ابرهای تیره در هم میپیچید و به طوفان مخرب تبدیل می شد و از پس آن گردبادی از سوی شمال میامد و سقف خانه ها را از جا می کند، دیوارهای خانه ها را در هم می کوبید و آخرین درختان باقیمانده مانده موز را ریشکن میکرد. در آن دوران، ارسلا به یاد سالهای شیوع مرض بیخابی میافتاد. این مصیبت باعث شده بود مردم در مقابل دلتنگی ها از خود دفاع کنند آرلیونو سگوندو یکی از آنهایی بود که با کار و فعالیت بیشتر و انجام کارهای سخت بر بیکاری و رخوت غلبه کرد شب که خشمگین بود و برای انجام کاری جزئی به خانه آمده بود، فرناندا سعی کرد چتری پاره را که از گنج پیدا کرده بود به او بدهد. اما او آن را رد کرد و گفت: نیازی به چتر ندارم. من قدیممونم تا آسمون صاف شه. این حرف و تصمیم او پای محکمی نداشت اما سعی میکرد تا حد ممکن روی حرفش بماند لباسهایش در خانه پتراکوتس مانده بود و هر سه روز یک بار خود را در میآورد و تنها با یک زیر شلواری مینشست و صبر میکرد تا آنها را بشویند در طول این مدت برای اینکه حوصلش سر نرود خود را وقف تعمیر وسایل میکرد که به تعمیر نیاز داشتند لولاهای های در پنجره ها را تنظیم و قفل ها را روغن کاری می کرد، پیچ های کوبه درها را که شل شده بود سفت می کرد و لنگه های در بزرگ خانه را تنظیم می کرد تا کیپ بسته شود. چند ماه با یک جعب ابزار در خانه به این طرف طرف در حال حرکت بود. جعب ابزاری که به احتمال از کولی ها در زمان خوزارکادیو و باقی مانده بود، کسی نمیدانست که این کار و فعالیت غیر داوطلبانه او ناشی از کسالت زمستان است یا از روی ریاضتی تحمیلی اما به هر دلیلی که بود این حسن را داشت که شکم بزرگش مانند خیک سوراخ شده کم کم جمع میشد. صورت لاک پشت مانندش گلگونی سعادت خود را به تدریج از دست می داد و قبقبش به تدریج آب می شد. تا کار به جایی رسید که از وزنش کاسته و شکمش کوچک شد و توانست دوباره خودش بند کفشهایش را ببندد فرناندو وقتی او را می دید که فنر در ساعتها می و از طرفی فنرها را بیرون می‌آورد، با تعجب به خود گفت که نکند شوهرش به همان مرز سرهنگ آرلیان و بو دچار شده باشد که ماهی های تلایی می و بعد آنها را زوب می کرد و دوباره شروع به ساختن می‌کرد. این مرض در خانواده آنها ارسی بود مثل سرهنگ با ماهی های کوچک تلائی یا امرانتا با کفندوزی و دوختن دکمه ها، یا خوز ارکادی و سگندو با بازخانی دست نوشته مرکیادس و ارسلا هم با خاطرات تکراریش اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شد. ریزش مداوم باران روی همه چیز اثر می‌گذاشت. طوری که حتی ترین ماشین ها هم اگر به طور مرتب و هر روز یک بار روغنکاری نمی شدند، انوای گلهای خود رو از میان چرخ های آنها می روید. نخهای زربافت شروع به زنگ زدن میکرد، کرد و های مرتوب کپک زفرانی رنگ میزد. هوا چنان مرتوب بود که ماهی ها می شنا کنان از در وارد شوند و از پنجره ها بیرون بروند یا در هوای اتاق شناور باشند. صبح یکی از همین روزها، اورسولا با این احساس از خواب بیدار شد که اندک اندک و در یک آرامش به پایان عمرش می رسد. او از روی آینده نگریش این روزها را پیشبینی کرده بود، پس، از اطرافیان خود خواست که در چنان روزی بلا او را حتی اگر روی تخت روان هم شده، پیش پدر روحانی آنتونیو ایزابل ببرند. اورسولا که نیمخیز شده بود، سانتا سوفیا دللاپیداد متوجه شد که پشت او را تعدادی زالو شیار شیار کردند و پیش از آن که تمام خون او را بمکند، با انبور، آنها را یکی یکی از پشت اورسولا کند و سوزند. در اثر بارندگی های بیامان همه جای خانه از آب و حشرات موزی پر شده بود. بنابراین برای تخلیه آب کف اتاقها مجبور شدند جوییهایی بکنند تا از شر غورباغه ها و حلزونها خلاص شوند. آجرچین زیر پایه های تخت را برداشتند تا بتوانند بار دیگر با کفش در خانه راه بروند. آرلیان و سگوندو که سخت سرگرم تعمیرات جزئی خانه بود متوجه گذر عمر و پیر شدن خودش نمی‌شد. مگر در یک بعد از زور و آن هم زمانی که روی سندلی گهوارعی در ایوان نشسته بود و داشت به پتراکوتس فکر می‌کرد، به این که از یاداوری او بدنش از شهوت بلرزد برای او دشوار نبود که دوباره به عشق کسالاتاور فرناندا برگردد چرا که جذابیت او با گذر عمر عمیق‌تر میشد. اما باران او را از شور و هیجان عشق تهی کرده و اشتهای سیری ناپذیرش را کور کرده بود سعی می کرد با یادآوری خاطرات گذشته و اینکه اگر این باران در سالهای پیش باریده بود چه کارها که نمیتوانست بکند خودش را سرگرم میکرد. او جزو اولین آدمهایی بود که سقف شیروانی دار را پیش از شرکت موز به مردم ماکندو شناساند. پشت بام خانه پترکوتس را شیروانی کرد تا موقع ریزش باران آرامش بیشتری داشته باشند و از صدای برخورد قطرات بر سقف لذت ببرند. اما دیگر حتی خاطرات دوران جنونآمیز جوانیش هم خوشی چندانی در او به وجود نمی آورد. درست مثل آخرین هرزگیش، که اشتیاق خود را در شهوت رانی از دست داده بود تنها چیزی که برای او باقی مانده بود مرور خاطرات شیرین و حیجان بود که آنها را بدون احساس ترخ کامی یا ناراحتی وجدان به خاطر می گویی این بارندگی طولانی فرصتی برای او فراهم کرده بود تا بنشیند و فکر کند تعمیرات فنی خانه با گازنبار و قوطی روغنکاری اشتیاق سست قدیمیش را در او زنده می کرد. این شوق را که می توانست دست به چه کارهایی بزند اما نزده بود وسوسه خانه او ناشی از افکار تازه یا درس اخلاق نبود بلکه به گذشته های خیلی دور یعنی به زمانی که در اتاق ملکیادس مشغول خواندن افسانههای های شگفت انگیز مربوط به قالیچه های پرنده یا نهنگ های قول پیکری که کشتیها را با تمام سرنشینانان یک جامی بلیدند مربوط میشد. در آن روزها که آریانای کوچک بر اثر قفلت فرناندا روی ایوان خانه پیدایش شد آریانا سگندو بلا فاصله تشخیص داد که او باید نوهش باشد بنابراین او را زیر حمایت خود گرفت موهایش را اصلاح کرد و لباس خوب و مرتبی به او پوشاند و یادش داد که از مردم نترسد. خیلی زود آشکار شد که او از نظر موروسی و قانونی آرلیان بوئندیای دیگری است. استخوان برجسته گونه ها و نگاه آشفته و انزوا اش به بوئندیها میمانست. برای فرناندو دوران فراغت فرا رسیده بود. برای مدتی میزان غرور خود را سنجید اما راهی برای درمان آن به ذهنش نمی رسید چرا که هرچی بیشتر به دنبال راه حل می گشت بیشتر هم عاجز می ماند اما اگر به موقع می فهمید که آرلیانو سگندو به زودی با شادمانی نقش خود را به عنوان پدر بزرگ می او خودش را درگیر آن همه مصیبت نمی کرد و سالها پیش از عذاب آن بلا رها شده بود امران تا که تازه دومین دندانش در آمده بود، خوهرزادش را به شکل یک اسباب بازی متحرک تلقی می‌کرد که دائم به این طرفان طرف می و او را از کسالت باران نجات می دهد. سگوندو سگندو به یاد دایرت المعارف انگلیسی افتاد که در اتاق ممه بود و دیگر کسی سراغ آن نرفته بود. اکس های آن را به خصوص اکس حیوانات را به دختر کوچک و نوش نشان میداد. نقشه جغرافیایی و عکس های کشورهای دورده است و شخصیت های معروف را برای آنها تشریح کرد. از اونجایی که زبان انگلیسی نمیدانست، برای ارزای حس کنجکاوی بچه ها چیزهایی از خود جل میکرد و به خورد آنها میداد. فرناندا تصور می کرد شوهرش منتظر بند آمدن باران است تا دوباره پیش پترکوتس بازگردد. در طول اولین ماههایی که اورلیانو سگوندو در خانه مندگار شده بود از این میترسید که مبادا شبها به اتاق خوابش بیاید و او را گرفتار و شرمساری کند چرا که پس از به دنیا آمدن امرانتا ارسلا او دیگر قادر به همخوابگی نبود به همین دلیل با پزشکان نامرعی مکاتبه میکرد این مکاتبه ها گاهی در اثر مشکلاتی در اداره پست مختل می‌شد. در اولین ماه‌های بارندگی وقتی که معلوم شد قطارها به خاطر باران شدید از روی ریل‌ها ها میلغزند در نامه‌ای که از طرف پزشکان آمده بود به او گفته بودند که نامههایش به دست آنها نمیرسد اما بعدها که ارتباطش با آنها قطع شد به این فکر افتاد که صورت خودش را با ماسک پلنگی که شوهرش در جشن خونین کارنوال به چهره زده بود بپوشاند آن وقت می توانست با اسمی جعلی برای معاینه پیش پزشک شرکت موز برود. اما یکی از آن چند نفری که اغلب خبرهای ناگواری برای او می خبر داد که شرکت موز در حال انتقال تشکیلات خود به جایی است که بارانی نباشد. فرناندا امیدش را از دست داد و خودش را قانع کرد که تا زمان پایان بارندگی منتظر بماند تا وضعیت پست دوباره روبه راه شود.ح سو دیگر حاضر بود بمیرد اما خودش را به دست تنها پزشکی باقی مونده در ماکوندو نسپارد همان پزشک افراد فرانسوی که مثل الاق ها از علف تغضیه میکرد. او سعی کرد به اورسولا نزدیک شود چرا که اطمینان خاطر داشت اورسولا میتواند داروی تسکین بخش حمله های او را پیدا کند اما عادت بی موردش که چیزی را با اسم اصلی خود نمی گفت باعث شد تا آنچه را که باید اول بگوید آخر بگوید و بالعکس به طوری که از روی خجالت دفع کردن را به جای وضع حمل میگفت و سوزش را به جای ترشح بکار می میبرد. به همین دلیل اورسولا به این برداشت معقول رسید که مشکل او مربوط به روده است نه رحم بنابراین به او توصیه کرد هر روز صبح ناشتا یک قاشق اصاره کلم بخورد اگر به خاطر این ناراحتی زنانه اش نبود که جز برای خودش شرمندگی در پی نداشت یا اگر به خاطر گم شدن نامه هایش نبود طولانی شدن باران اهمیتی برای او نداشت چون زندگی او طوری سپری شده بود که گویی همیشه با بارندگی همراه بود است برنامه زندگیش را تغییر نداد و تشریفاتش را کم نکرد. حتی زمانی که آب باران در کف اتاق جمع شده بود و آنها مجبور بودند پایه های میز غذاخوری را بر روی چند آجر قرار دهند و سندلی هایشان را روی الوارهای زخیم بگذارند تا پاهایشان موقع نشستن خیس نشود، او باز هم رومیزی ابریشمی را پهن می کرد و شمدان ها را روی میز میگذاشت و غذا را در ظروف چینی سر میز میآورد. عقیده داشت که چون این مصیبتهایی نباید من از و رسوم شوند. دیگر کسی قدم به خیابان نمیگذاشت. اگر به فرناندا و گذار میکردند او از ابتدا اجازه چنین کاری را نمیداد. نه تنها از زمان آغاز بارندگی بلکه از خیلی پیشتر به عقیده او درها را برای این اختراع کرده بودند که بسته بماند و اینکه آدم بخواهد بفهمد در خیابان چه میگذرد تنها کار آدمهای هره است. با این وجود وقتی فهمیدند پیکر سرهنگ جرینلدو و مارکز از خیابان مقابل خانه تشیمی شود او اولین نفری بود که به خیابان نگاه انداخت گرچه فقط از پنجره نیمه باز به مراسم نگاه می‌کرد، اما چنان متأثر شد که برای مدتی طولانی خودش را به خاطر سستی اراده سرزنش کرد تا کنون مراسمی تر از آن ندیده بود تابوت را در گاری گذاشته بودند و روی آن را با برگ درخت موز پوشانده بودند اما کف خیابان چنان پر از گلولای بود که چرخهای گاری مرتب در چاله میافتاد یا در گل گیر میکرد پرچمی که روی تابوت کشیده شده بود از ریزش باران خیس شده بود و هنوز لکه های خون دوران جنگ در جای جای آن به چشم میخورد. همان پرچمی که وطن پرستان افراتی اجازه نداده بودند آن را روی تابوت عزیزانشان بکشند آنها خنجر او را هم که قلاف ای داشت بر روی تابوت گذاشته بودند خنجری که هر وقت سرهنگ جرینلدو و مارکز به دیدن آماران می رفت ابتدا آن را از کمرش باز می کرد تا وقت دیدار مسلح نباشد پشت سر گاری تعدادی از آخرین بازمانده های آتش در نیرلندیا با پاهای برهنه و پاچه های زده. افتان و خیزان میآمدند و هر کدام یک عصا در دست و تاج گلی در دست دیگر داشتند که گلهای کاغذی آن در زیر باران از ریخت افتاده بود. سروز آنها با خیابانی که هنوز هم نام سرهنگ آرلیان بواندا را بر خود میدید تناسبی نداشت. هنگام عبور از جلوی خانه سرشون را برگرداندند و به خانه نگاهی انداختند. وقتی به سر چهار راه رسیدند و خواستند به طرف میدان بپیچند، گاری در گل فرو رفت و مجبور شدند برای بیرون کشیدنش کمک بخواهند. ارسلا از سانتا صوفیا دلپیداد خواست تا او را به جلوی خانه ببرد. او طوری به دشواری حرکت تشیر کنندگان نگاه میکرد که هیچ کس در بینایی او شک نکرد. به خصوص به این دلیل که ارسلا یک دست خود را به هوا بلند کرده بود، و هماهنگ با حرکت گاری تکانش میداد با صدای بلندی فریاد زد خدا حافظ جرینلدو پسرم به سلام منو برسونو برسون و بهشون بگو وقتی بارون بند بیاد میان پیششون آریان سگندو او را با احترام به, به اتاقش برد و در بسترش خواباند با لحنی خودمانی همانطور که همیشه با او صحبت می کرد، منظور ارسلا را از آن خداحافظی پرسید اورسولا گفت راست گفتم فقط منتظرم بارون بند بیاد تا بمیرم گرچه گلالود بودن سطح خیابان هامانه بزرگی برای آرلیان سگندو محسوب می شد اما به دلیل اینکه نگران وضع دامهایش بود پارچه ضد آبی روی سر خود کشید و به طرف خانه پترکوتس را افتاد به آنجا که رسید او را در حالی دید که تا کمر در آب حیات فرو رفته و سعی می کند لاشه اسبی را بیرون بکشد آرلیانو و هم با یک پارو کمکش کرد اما لاشه باد کرده حیوان مانند ناقوسی روی شکم بزرگ خود چرخید و بیشتر در گل فرو رفت از شروع بارندگی تنها کاری که پتروکوتس توانسته بود انجام دهد جم کردن لاشه حیواناتی بود که کف حیات افتاده بودند. در طول اولین هفته های بارندگی او مرتب برای آوریان سگندو پیغام فرستاده بود که اقدامی استراری برای مراقبت از حیواناتش انجام بدهد اما او هر بار جواب داده بود که عجلهی در کار نیست یا گفته بود اوضاع چندان وخیم نیست یا وعده داده بود که وقتی هوا صاف بشود سر فرصت به این مسئله فکر میکند. اما یک بار برای او پیغام فرستاد که تویلی اسب ها پر از آب شده است و گله ها دارند فرار میکنند تا خودشان را به زمین های مرتفع برسانند به جاهایی که چیزی برای خوردن نمیروید و در معرض خطر حمله پلنگ و انواع مرز ها هم قرار میگیرند. اما آریان سگندو برای او جواب فرستاد که دیگر کاری نمی توان انجام داد و وقتی آسمان صاف شد، حیوانات بار دیگر زاد و ولد می کنند پترکوتس تلف شدن دست دسته حیوانات را میدید دید و آنهایی را که در گل گیر کرده بودند و هنوز جانی داشتند سر میبرید تا گوشتشان هدر نرود عاجز شده بود و میدید دید که چگونه باران سیلاسا با بیرحمی ثروت آنها را از چنگشان بیرون می کشد سرماثی که زمانی بزرگترین و مطمئنترین دارایی در ماکوندو محسوب میشد، و حالا چیزی از آن باقی نمانده بود جز لاشه های متورم و متلاشی شده و بوی تعفن. زمانی که بالاخره اورلیان سگوندو تصمیم گرفت خودش به آنجا برود پس از رسیدن به خانه پتراکوتس در استبل ویران شده تنها جسد یک اسب و قاطری گلالود را دید. پتروکوتس وقتی چشمش به او افتاد بدون تعجب یا شادمانی و بدون پشیمانی لبخند تلخ و تمسخرآمیزی به او زد و گفت زود یهکمی وردین او پیر شده و تبدیل به مشتی پوست و استخوان شده بود پترکوتس از بس به باران خیره مانده بود از چشمانش اندوه میبارید و رام شده بود سگنده او را که دید بیش از سه ماه را در خانه او ماند نه به این خاطر که در آنجا بیشتر به او خوش میگذشت بلکه تنها به این دلیل که فرصتی پیدا نمیکرد تا باز هم پارچه ضد آب را روی سرش بکشد درست همان طور که از خانه خودش پیغام داده بود میگفت عجله‌ای نیست امیدوارم چند ساعت دیگه به بیاد در طول اولین هفته به چروکهایی که گذر زمان و باران در پترکوتس ایجاد کرده بود عادت کرد و رفته رفته او را همانطور طور که قبلا دیده بود می‌دید عشق و نشات او را به یاد می‌آورد که موجب باروری فراوان دامهایشان می‌شد در یکی از شبهای هفته دوم آرلیانو سگوندو از روی عشق و کمی هم از روی لذت با نوازش خود او را بیدار کرد اما بر برخلاف گذشته محبت او را بی جواب گذاشت و با لحن دل سرد کننده ای گفت بگیر به خواب، حالا وقت این کورانی نیست. آرلیان سگندو در آینه های سقف به خودش نگاه کرد بعد پترکوتس را دید که رگهای متصل به ها و مهره های ستون فقرات او از زیر پوستش بیرون زدند فهمید که حق با اوست نه به خاطر نامناسب بودن زمان بلکه این وضع جسمانیش بود که اجازه چنین کارهایی را دیگر به او نمیداد. آرلیان سگوندو با اطمینان از اینکه نه تنها اورسولا بلکه تمامی اهالی ماکندو منتظرند باران بند بیاید تا بمیرند لوازم شخصیش را جمع کرد و در چند چمدان گذاشت و به خانه بازگشت اعضای خانوادهش همانطور بودند که دو هفته پیش دیده بود. به دلیل بیکاری روی تخت کس کش کرده بودند و به آسمان خیره مانده بودند تا ببینن باران ران کی بند میآید. میدانستند که دیگر وقتشان ارزش سابق را ندارد که بخواهند آن را به سال و ماه تقسیم کنند یا روزها را به ساعت، چرا که دیگر کاری نبود که انجام بدهند مگر آنکه بنشینند و به نقطه خیره بمانند؟ اما برخلاف بزرگترها بچه ها با شادمانی از و سگندو استقبال کردند چون میدانستند که او باز هم با آکاردون قدیمیش برای آنها آهنگ می نوازد آنها از گوش دادن به صدای آکاردئون کمتر از تماشای عکس های المعارف لذت می بردند به همین دلیل یک بار دیگر به اتاق ممه رفتند و در آنجا و سگندو از روی تخیلاتش داستانی ساخت و برایشون تعریف کرد در درون داستان یک بادکنک معمولی تبدیل به یک فیل پرنده میشد و در آسمان میان ابرها به دنبال جایی برای خوابیدن میگشت. یک بار به تصویر مرد اسب سواری برخورد که برخلاف لباسهای عجیبش نگاه آشنایی داشت. پس از اینکه عکس را از نزدیک و با دقت نگاه کرد، فهمید که عکس سرهنگ آرلیان و است. تصویر را به فرناندو نشان داد. و او هم نه تنها شباهتشون را تایید کرد بلکه گفت که شبیه همه اعضای خانوادیان هست اما آن عکس عکس یک جنگجوی تاتار بود زمان با این گونه افثان پردازی های او میگذشت که یک روز فرناندو به او خبر داد که تنها یک کیلو گوشت نمک سود و یک کیسه برنج در انبار باقی مانده است آرلیانه پرسید حالا انتظار داری من چیکار کار کنم فرنندو جواب داد من نمیدونم این کار مربوط به مرداست آریان سگوندو گفت خیلی خوب بابا خیلی خوب هواک صاف شده کارش میکنم به جای رسیدگی به مشکلات خانه مشتاق تماشای دائرت المعارف شده بود حتی زمانی که مجبور بود به تکه کوچک گوشت و مشتی برنج اکتفا کند می میگفت الان که قیه ممکنه تونیم کار بکنیم بارون هم که قرار نیست تا ابد ادامه داشته باشه هر روز که مواد غذایی موجود در انبار کمتر میشد شکایت های بیشتر میشد تا اینکه یک روز صبح روی دیگر خود را نشان داد و شروع به قر زدن کرد درست مانند گیتار نوازی که با صدای ملایم شروع می کند و به تدریج و در نیمه های روز صدای زربه ها بالاتر می رود اما اورلیانو سگندو تا فرد و صبحش متوجه قرزدن های فرناندا نشد تا اینکه سر میز صبحانه صدای قرولند او را که بلندتر از صدای ریزش باران بود شنید. فرناندا در خانه این طرفان طرف می رفت و وزوز وز کنان می گفت که پدر و مادرش او را یک ملکه باراوردند و حالا باید در این دیوان خانه کلفتی کند. آن هم با شوهر تنپرور و خدا نشناسی که به پشت می خوابد و دهانش را به آسمان باز نگه داشته تا شاید از آسمان برایش نان ببارد. در حالی که او دارد جان می کند که این خانه دربداغان را که به هیچ بنده است با این همه کار که به سرش ریخته و با این همه مصیبت و بدبختی که از هر طرف بر او تحمیل شده سر پا نگه دارد. او باید از بوق سهر تا زمان خواب جان بکند تا اینجا را درست کند و آنجا را سر پا نگه دارد. وقتی به این خانه قدم گذاشت گویی چشمهایش پر از خورد شیشه شده بود اما حتی یک نفر هم پیدا نشد که به او بگوید صبح خیر فرناندا دیشب خوب خوابیدی؟ و یا کسی حتی از روی ادب هم که شده نپرسید؟ فرنانده چرا رنگت پریده؟ چرا زیر چشمات کبود شده؟ هرچند که واقعا به این دلجوی ها نیاز داشت اما چه کسانی؟ از آنها که همیشه او را به چشم یک مزاحم می دیدند و به اندازه یک قاب دستمال کهنم برایش ارزش قائل نبودند و او را مانند آدمی ساده و ابله تصور می کردند که بر روی دیوار نقاشی شده است؟ از کسانه که دائم هر جو می رفتند پشت سر او حرف می زدند و او را موش کلیسا می و نیرنگباز باز می دانستند. حتی آن آمارانتای خدابیامرز با صدای بلند گفته بود اون از اون دسته آدم هایی که به ماترتش میگه دنبال من نیا با امیدی. خدایا چه حرف او آن همه ناملایمات را برای خاطر خداوند بزرگ تحمل کرده بود و شکیبایی به خرج داده بود اما همان روزی تحملش تمام شد که آن خوز کادیو و حیوان صفت گفته بود که بدیومنی و بدبختی خانوادش از زمانی آغاز شده که این دختر ترشیده مناطق کوهستانی قدم شومش را به این خانه گذاشت. فکرش بکنید. دختر شمالی کسی و بذاری تو خونه ما. خدا به اون رحم کنه. این دختر از نژاد همون کساییه که دولت برای قتل عام کارگرا فرستاده بود. خوزار کادیو سگندو فقط به او تنه میزد. آن هم به دختر تعمیدی دوک آلبا به بانوی که همسران رئیس جمهور در برابر شکوه او هیچ هستند. به بانوی با خون اشرافی که حق دارد زیر امضای اسم فامیل خود یازده نام اسپانیایی اصیل را بنویسد او تنها موجود فناناپذیر در آن شهر پر از حرامزاده بود که همه از دیدن شانزده دست نقره آلات او بهت زده شدند طوری که شوهر زناکارش بعد از شنیدن این موضوع از خنده بر شده و گفته بود که آن همه کارد و چنگال و قاشق نقره برای استفاده انسان ها نیست و به درد غذا خوردن هزار پاها میخورد. مگر او تنها کسی در آن شهر نبود که حتی با چشمان بسته هم می بگوید شراب سفید را چه موقع باید نوشید؟ و در کدام طرف میز و در کدام لیوان باید ریخته شود و شراب قرمز چه موقع باید نوشیده شود و در کدام طرف میز و در کدام لیوان باید ریخته شود؟ نه مثل آن امرانتهای دهاتی خدابیامورز که فکر میکرد شراب سفید را روزها میخورند و شراب قرمز را شبها او مگر تنها کسی نبود که در کل آن مناطق ساحلی در یک لگن تلایی رفع حاجت میکرد تا جایی که آن سرهنگ آرلیان و بویندیای خدابیامورز با آن گستاخی و حالت احمقانه و بددهنی عوامانهش باید پشت سر او بگوید این امتیاز از کجا به دست آورده؟ که این حق گوش داده که توی لگن طلایی برینه مگر اینکه فضله‌ای که, که میندازه با فضله بقیه فرد داشته باشه و بوی گل ریحون بده. فکرش رو بکنید درست با همین الفاظ. طوری که حتی دخترش رناتا هم که لگن را زیر تخت خواب او میبیند به خودش اجازه بدهد که بگوید حتی اگه از طلای ناب و با دسته جواهر نشونن باشه توش غیر از گوه ناب چیز دیگه‌ای نیست که حتی بدتر از هر گوه دیگه چرا به این خاطر که آن گوه گوه یکی از مردمان مناطق کوهستانی است فکرش را بکنید وقتی دختر خود آدم این حرف را بزند دیگر از بقیه اعضای خانواده چه انتظاری میتوان داشت اما این حق را به خود میداد که شوهرش کمی بیشتر رعایت حال او را بکند چون خوب یابد او شوهر واقعی او بود و یار و یاورش تنها محرم اسرارش بود که با آزادی کامل و دل بخواه با او ازدواج کرده بود شوهری که او را از خانه پدریش جدا کرده بود و از این بابت مسئول بود از جایی که هرگز هیچ کم و کسری نداشت و از چیزی در رنج و عذاب نبود جایی بود که در آن حلقه گلهای ویژه مراسم تطفیم را میبافت و این کار را فقط به خاطر وقت گذرانی انجام میداد و نه چیز دیگر چون پدر تعمیدیش در ای که با نگین انگشترش مهر شده بود رسما به او اعلام کرده بود که دستان ظریف دخترش برای انجام کارهای دنیاوی خلق نشدهاند مگر نواختن کلاسن و حالا آن شوهر دیوانه او با آن همه سفارش و نصیحت او را از خانه پدریش بیرون کشیده و به آن دیگ جوشانی آورده بود که نفس آدم از گرمای هوایان بند می آمد و هنوز دوران روزش به پایان نرسیده چمدانهای زلیل مردهی سرگردانش را برداشت و با آکاردئون ولگرد و هر جایی خود راه افتاد و رفت تا با معشوقه زناکارش به او خیانت کند. آن هم بازن سلیتهی که فقط کافی است آدم از پشت او را ببیند تا از همه چیز بیزار شود فقط کافی بود لولیدنش را نگاه کرد تا فهمید یک مادیان بیشتر نیست زنی که برایش فرق نمی کرد که سر میز باشد یا در خوکدانی یا در رخت خواب که دام پرور و خدا نترس بود و مطیع قوانین فاسقش که در مقابل خواسته های بود تسلیم می شد زنی که حاضر بود هر کاری را انجام دهد درست مثل زنان هر جایی فرانسوی و حتی بدتر از آنها دست کم؟ آنها این شرافت را دارند که هر وقت مشتری در اتاقشان هست، فانوس قرمزی پشت در بگذارند. شوهرش نمی با او هم همون رفتار را بکند و از او هم همون چیزها را بخواهد. او مثل آنهای دیگر نبود. او یک زن بود. یک زن. یک خانم. او همه جای یک خانم بود. از بد و تولدش یک خانم بود. در رختخواب سر میز یک خانم بود با ترس از خداوند و بنده خداوند و مطیع خداوند او دختر عزیز دوردانه دون رنات آرگوت و دون فرناندو کارپیا بود به خصوص پدرش مردی با آن نامونشان یک مسیحی با ایمان یکی از شهسواران سواران مقبره مقدس جزو آنهایی که مستقیم از طرف خداوند این امتیاز را دریافت میکردند کردند که در داخل گور سالم باقی بمانند و پوست روی گونه هایشان مثل صورت نو نوعروسان صاف بماند و چشمانشان زنده و شفاف مانند زمرد. آرلیانو و سگندو وسط قرقرهای او پرید و گفت یکی که حقیقت نداشت چون وقتی جسدشو اینجا بردن بو گرفته بود آریان سگوندو آن شکیبایی را داشت تا با حوصله تمام سراسر روز را به قرزدن های همسرش گوش بدهد. بالاخره هم توانست مچه را بگیرد. اما فرناندا به حرف او اعتنایی نکرد و فقط صدای خود را کمی پایین آورد. در آن شب موقع شام صدای قرولند و اوقات تلخی فرناندا انقدر بالا رفت که مانع شنیدن ریزش باران شد. آرلیانو سگوندو کم غذا خورد و با سری پایین انداخته میز شام را ترک کرد و به اتاقش رفت. صبح روز بعد سر میز صبحانه فرناندا از نگاهش معلوم بود که نتوانست خوب بخوابد. پیدا بود حرفی و اقدهی در دلش باقی نمانده است. با این وجود وقتی شوهرش از او پرسید که آیا امکان دارد برایش یک تخم مرغ نیم پس درست کند؟ او به جای ساده جواب او را بدهد که تخم مرغهایشان هفته پیش تمام شده با اوقات تلخی مردها را به باد انتقاد گرفت که همه آنها تنها به فکر شکمشان هستند و تازه از روح هم نمیروند و سرمیز جگر چکاوک طلب می کنند. آریان سگندو زخم زبانهای او را جدی نگرفت و بچه ها را برای تماشای عکس های دایرت المعارف به اتاق ممه برد. فرناندا به اتاق ممه رفت و وانمود کرد مشغول مرتب کردن اتاق است آن هم فقط به این خاطر که قرولند خود را در گوش شوهرش فرو کند و به او بگوید که چرا میخواهد به بچه های معصوم دروغ بگوید و عکس سرهنگ آرلیان و را در داارت المعرف معرفبان نشان دهد بعد از ظهر آن روز زمانی که بچه ها در خواب بعد از ظهریشان بودند آلیون سگوندو در ایوان نشسته بود که فرناندو آنجا هم او را رها نکرد و دوباره شروع به قرب زدن کرد و تحریکش کرد او مانند خرمگس دور و او میچرخید و میگفت حالا که چیزی جز سنگ برای خوردن باقی نمانده آقا اینجا در ایوان نشسته است و مانند حاکمان مشرق زمین دارد به صدای باران گوش میدهد البته همه میدانند که غیر از این کار دیگری از دستش بر نمیآید چون تنبل و بیکاره است و به درد هیچ کاری نمیخورد دستهایش مثل پنبه نرم شده است. فقط بلد است از قبل زنها بخورد و چاخ شود. آقا خیال می با زن یونس ازدواج کرده که داستان نهنگ او را باور کند. آریان سگندو دو ساعت تمام روی ایوان نشست و به صدای وزوز فرناندا گوش داد. اما هیچ حرکت و واکنشی از خود نشان نداد. طوری که انگار کر شده. تا اواخر بعد از ظهر کلمهای حرف نزد و حرف فرناندا را قطع نکرد مگر زمانی که دیگر تحمل شنیدن قرولوندهای او را که مثل پلتک بر سرش کوبیده میشد از دست داد و گفت نطفا خفه شو فرناندا نه تنها صدایش را پای نیاورد بلکه آن را بلندتر کرد چرا باید خفه شم کسی اگه نمیخواد صدام و بشنوه میتونه بره یه جای دیگه آرلیان سگندو کنترل خود را از دست داد، به آرامی از سر جای خود طوری بلند شد که انگار می دست و پای خود را کش بدد. بعد، با خشمی حساب شده، گلدانهای تزئینی را از لبه ایوان یکی یکی برداشت و به زمین و خورد کرد. فرناندا که انتظار این برخورد تند را از او نداشت، یک قدم عقب رفت. تا آن لحظه نمیدانست که قر چه اثر مخربی میتواند دیگران بگذارد اما برای جبران خیلی دیر شده بود. آریان سگندو که گویی از یک فشار عظیم رها شده شیشه قفسه چینی آلات را شکست و ظروف چینی را یکی یکی بیرون آورد و به زمین کوبید و خرد کرد. در این کار هیچ عجله به خرج نمیداد با همان حوصلهی که سالها پیش دیوارهای خانه را با اسکناسهای پول پوشانده بود، ظروف کریستالی بوهمیایی را هم به دیوارها کبید. به سراغ گلدانهای نقاشی شده رفت و تابلوهای زنانی که سوار بر غایخهای پرنقش نگار بودند و آینه با قاب طلایی و هر چیز شکستنی دیگر. از اتاق پذیرایی تا انبار هر چرا که بود شکست و خرد کرد. آخر سر هم کوزه بزرگ وسط آشپزخانه را برداشت و به حیات پرت کرد که با صدای مهیبی در هم شکست. بعد پارچه ضد آب را روی سر خود کشید و از خانه بیرون رفت. ساعتها بعد و پیش از نیمه شب با چند تکه بزرگ گوشت نمک سود چندین کیسه برنج ذرت و, و چند جعبه موز به خانه برگشت. از آن به بعد، دیگر کمبود غذا در خانه احساس نشد امرانتا ارسولا و آرلیانای کوچولو که غیر از خوردن و بازی کردن و خابیدن کار دیگری انجام نمی دادند به طور حتم از دوران بارندگی خاطره خوبی در ذهن خود داشتند با وجود سختگیری های فرناندا در چاله های پر از آب حیات می پریدند و مارمولک ها را می گرفتند آنها را می و تشریحشان میکردند زمانی هم که چشم مادر بزرگشان سانتا سوفیا داد را در آشپزخانه دور میدیدند تظاهر میکردند که با ریختن پودر بالهای پروانه توی غذا آن را سمی میکنند اورسولا را مناسبترین و راحتترین وسیله برای بازی کردن میدانستند او را به صورت عروسک بزرگ قدیمی با لباسهای رنگارنگ و با صورتی سیاه شده با دوده تلقی میکردند که میشد از یک گوشه به گوشه دیگر اتاق برد و با او بازی کرد. حتی یک بار هم میخواستند چشمان او را با نوک قیچی باغبانی از کاسه در بیاورند همان کاری که با قرباقه ها انجام میدادند. از هیچ چیز به اندازی حواظپرتی او شاد و خندان نمیشدند. در واقع از آغاز سومین سال بارندگی، ذهن ارسلا مخشوش شد و حضور ذهن خود را از دست داد زمان حال را با روزهای بسیار دور گذشته اشتباه می و حتی به خاطر فوت مادر بزرگش پترانیلا ایگواران سه روز تمام ماتم گرفت و گریه وزاری کرد کسی که در واقع حدود یک قرن پیش دفن شده بود او چنان معصومانه گرفتار سردرگمی شده بود که فکر میکرد کرد کوچولو همان سرهنگ آورلیانو بویندی درست در همان زمانی که شوهرش او را برای کشف یخ برده بود. همچنین فکر میکرد کرد خوز که در آن روزها در مدرسه تعلیمات دینی آموزش می دید پسر بزرگش خوز آرکادیو است که همراه کولی ها رفته بود. او انقدر راجع به اعضای خانواده خود صحبت کرده بود، و آنقدر آنها را توصیف کرده بود و بچه ها آنقدر مطلب درباره آنها یاد گرفته بودند که با تخیلشان به دیدار آنها می‌رفتند. آنهایی که نه تنها مدت‌ها از مرگشان میگذشت بلکه به روزگاران گذشته تعلق داشتند آن دو ملاقات های خیالی خودشان را چنان با آب و تاب و جزئیات کامل برای او تعریف می که ارسلا در حین دراز کشیدن روی تخت خواب و با آن موهای سفید و با دست مال قرمز رنگی که روی صورتش میکشید از شنیدن آن حرفها غرق در لذت میشد طولی نکشید بچه ها متوجه شدند که اورسلا در گفتگوهای های مدام از دیگران میپرسد که آیا کسی تندیس گچی حضرت یوسف را به خانهیان ها آورده بوده تا پس از بند آمدن باران بیاید آن را ببرد به این ترتیب اورلیانو سگوندو پی برد که ای در جای از خانه دفن شده است که تنها اورسولا از محلان خبر دارد اما پس از آنکه به هیچ طریقی نتوانست از زیر زبان او حرفی بیرون بکشد فهمید که اورسولا با وجود از دست دادن هوش و حافظه خود آن انداز از قوه حافظش را حفظ کرده که این راز را پیش خود نگه دارد آن را فاش نکند مگر آنکه صاحب اصلی گنجینه بتواند اصالت خود را به او ثابت کند او در این مورد به قدری محکم و هوشیار بود که وقتی آرلیان و سگندو سعی کرد یکی از دوستانش را به جای صاحب اصلی گنجین جا بزند اورسولا با سوالهای دقیق و حربهای ظریف خود مشت او را باز کرد آرلیان و سگندو که حالا یقین داشت اورسولا آن راز را با خود به گور خواهد برد با این نقشه که می خواهد در حیات لوله آب بکشد چند کارگر آورد. تا کف حیات را بکنند اما چون چیزی پیدا نکردند خودش با فلزیاب زیاب همه جای خانه را کاوش کرد ولی بعد از سه ماه کار طاقت فرسا چیزی که شبیه طلا باشد نیافت پس از آن با این امید که ورقهای فال پیلار ترنرا بیش از هر چیز دیگری کمکش خواهد کرد پیش او رفت اما پیلار ترنرا گفت باید خود ارسلا ورقها را بر بزند او وجود گنجینه را با محاسبه دقیق ارزش آن که شامل هفت هزار و دویست و چهارده سکه طلا بود تأیید کرد و به طور دقیق گفت که تلاها در سه کیسه قرار دارند که با مفتولهای مسی بسته شده است و در ای به قدر صد متر قرار گرفتند که تخت خواب ارسلا درست در مرکز دایره است. پیلار به او هشدار داد که تا باران بند نیاید و آفتاب در سه ماه جوان به طور پی در پی به کف حیات نتابد و حجم گل را ناخوشا و تبدیل به خاک نکند گنجینه پیدا نخواهد شد ابهام اطلاعات آنقدر زیاد بود که به نظر آرلیان سگوندو همچون افسانه های ارواح جلوه میکرد او به آن مختصات اعتنای نکرد و با وجود اینکه در ماه اوت بودند و بر اساس پیشگویی دستکم تا سه سال دیگر باید صبر میکرد دست به کار شد. اولین موردی که موجب شگفتی و سردرگمی بیشتر او شد این بود که طبق فاصله‌ای که پیشگویی شده بود، دیوار عقبی حیات تا محل قرار گرفتن تخت خواب اورسولا دقیقاً 122 متر بود. فرناندو وقتی که شوهرش را در حال اندازهگیری حیات دید، خیال کرد او هم مانند برادر دوقلوی خود عقلش را از دست داده وقتی شنید او به کارگران حفاری دستور می‌دهد که باید گودال‌ها را یک متر دیگر هم بکنند شکش به یقین تبدیل شد که علاقه او به اکتشاف تنها با خورکار کادیو بوئندیا قابل قیاس است آرلیون سگوندو در اثر همین کار و فعالیت‌ها بود که روز به روز لاغرتر شد بار دیگر به برادر دوگلو شبیه شده بود آن هم نه تنها به خاطر لاغر بودن بلکه در انزوا طلبی و تنهایی دیگر وقت خود را صرف بچه ها نمی کرد. در ساعات نامناسب غذا می و به دلیل ایستادن در کنار حفاران و نظارت بر کارانها سرتاپا گلالود بود و با همون سر و وزن وارد آشپزخانه می شد و به ندرت به سوالات سانتا صوفی و داد جواب میداد. فرناندا هم که او را غرق در کار و فعالیت می دید فکر می کرد که لجاجت و بیقراری او ناشی از پوشت کار و از خودگذشتگی و تلاش سرسختانه اوست از اینکه او را تنبل و تنپرور نامیده بود خود را سرزنش کرد اما آرلیان سگندو در آن زمان در موقعیتی نبود که به عواطف و احساسات همسرش پاسخ بدهد او تا گلو در شاخ و برگ های بوته های گندیده و میان گلولای انباشته شده در چاله های حیات فرو رفته بود آنقدر حیات اصلی و حیات خلوت را کنده بود و گل ها را طلمبار کرده بود که جای حرکت باقی نمانده بود حتی زیر پای ظلع شرقی ساختمان اصلی را چنان کنده بود که یک شب در اثر ریزش آن قسمت خانه چنان لرزید که انگار زلزله آمده است و همه را به وحشت انداخت سه تا از اتاق داشت فرو میریخت و از ایوان تا دیوار اتاق خواب فرناندا هم شکاف عمیقی برداشت. اما آرلیان سگندو از کاوش خود دست نکشید. هرچند آخرین امیدهای او در حال خاموشی بود، اما تنها چیزی که با عقل کمی جور در میآمد پیشگویی ورقها بود. پیهای فرو ریخته را دوباره محکم کرد و شکاف ها را با ساروج پر کرد. این بار از سمت غربی خانه شروع به هفواری کرد در دومین هفته ماه جوان سال بعد هنوز به هفواری مشغول بود که به تدریج از شدت باران کم شد ابرها از هم پاشیدند و لحظه به لحظه این یقین جای تردید را گرفت که سرانجام آسمان صاف خواهد شد و چون این هم شد در ساعت دو بعد از ظهر یکی از روزهای جمعه جهان با نور قرمزرنگ رنگ جنوناسای آفتاب تابان که به زبری گرد و خاک پخته و به خونکی آب زلال بود شعله زد و تا ده سال بعد ای باران نبارید. بعد از آن همه بارندگی ماکندو به تدریج رو به ویرانی بود. در میان گلولای انباشته شده در خیابانها بقایای پوسیده اساسیه و مبلمان منازل اسکلت حیوانات مرده که رویشان سوسن قرمز روییده بود و از بقایای های تازه وارد که در اثر ادامه بارندگی به همون سرعتی رفته بودند که آمده بودند، جز خاطره چیزی باقی نمانده بود. خانه‌هایی که در زمان اوج پرورش و صادرات موز با عجله ساخته شده بود، متروک مانده بود. شرکت موز تأسیسات خود را برچیده و تنها ویرانه ای از آن تشکیلات باقی مانده بود خانه های چوبی با آن تراس های خونک برای ورقبازی های بعد از ظهر گویی با یک باد سهرامیز کنده شدند و بر باد رفتند همان بلایی که سالها بعد شهر ماکندو را از صفحه روزگار محو کرد تنها نشانی که سالها بعد از وجود بشر در ماکندو باقی ماند یک لنگ دست کش پاتریشیا براون بود که در اتومبیلی که زیر بوته های فرنگی مدفون شده بود قرار داشت. همان جایی که در زمان پایگذاری ماکندو توسط خوز آرکادی و مورد کاوش قرار گرفته و بعدها توسط شرکت موز به شکوفایی رسیده و تبدیل به مردابی مملو از ریشه های پوسیده بوته ها و درختان موز شده بود. آنجا طوری در اثر سیلاپ ها شسته و صاف شده بود که آدمی میتوانست در افق دوردست دریای کفالود ساکت را ببیند. آرلیان سگوندو وقتی در اولین یک شنبه پس از پایان بارندگی لباس خشکی بتن کرد و برای دیدن دوباره ماکوندو به خیابان رفت دچار بحران روحی شدیدی شد. نجات یافتگان همانهایی بودند که پیش از حجوم طوفان شرکت موز در شهر میزیستند و حالا مانند او به خیابان ها آمده بودند تا درخشش دوباره آفتاب را جشن میگیرند. پوست بدنشان شبیه رنگ خزه بود و بوی کپک میدادند. با این وجود از اینکه شهر زادگاه خود را دوباره باز یافته بودند در دل شادی میکردند. طولی نکشید که خیابان عرب ها مانند گذشته رونق گرفت شبیه آن روزهایی شد که عرب های دورگرد با نقلین و آویزان از گوش در شهرهای اطراف تالا پرسه میزدند و سعی میکردند چیزهای قشنگ ولی کمبه های خود را با توتیهای آمریکای جنوبی محاوزه کنند کسانی که وقتی به ماکندو پا گذاشته بودند تصمیم گرفتند مندگار شوند و به یک عمر سرگردانیشان پایان بدهند اجناسی که در مغازه های آنها تا پایان یافتن باران دوام آورده بود و برای فروش از غلابهای روی درها آویزان شده بود همه جایشان کپک زده بود پایه‌های چوبی قفصه ها را ها خورده بودند و دیوارها به خاطر رطوبت در حال فروریختن بودند عرب های نسل سوم در آنجا به همان حالتی نشستند که پدرانشان و پدر هایشان در گذشته ها نشسته بودند با همان کمحرفی و خاموشی و ایمن از گذر زمان و فاجعه با همان حالت زنده یا مرد که پس از دوران مرض بیخوابی و جنگ های سیودگانه سرهنگ آرلیان و بندیا داشتند. روحیه استوار آنها در برابر ویلان های میزهای بازی و دکه های غذای فروشی در مقابل آوار سالنهای های تیراندازی و کوچه ای که در آن فالبین ها و تعبیرکنندگان خواب و رمال ها بودند همچنان بدون تغییر و نیرومند باقی مانده بود. و سگوندو با همان لحن خودمانیش از آنها پرسید که به کدام منبع اسرارآمیز متکی هستند که در اثر باران و سیلاب ها و طوفان از بین نرفتند، و دست به کدام کار شیطانی زدند که تا حالا غرق نشدند اعراب یکی پس از دیگری مغازه از پس مغازه و به اینکه با هم مشورتی کرده باشند لبخندی موزیانه زدند و نگاهی رؤیایی تحویل او دادند و گفتند شنا شنا پترکوتس شاید تنها فرد بومی آنجا بود که روحی عربها را رو داشت او نابود شدن استبل حیواناتش را میدید. ویرانی و بر باد رفتن انبارهای بارهای را میدید اما با این حال توانسته بود خانهش را کماکان سر پا نگه دارد. در طول دومین سال ادامه بارندگی او بارها به آرلیانو سکننده و پیامهای فرستاد و کمک خواست. اما او هر بار پیغام فرستاد که نمیداند چه موقع به خانه او برمیگردد. اما در هر صورت وقتی برگردد، با صندوق‌های پر از سکه‌های طلا می آید و کف اتاق خواب او را از طلا فرش می‌کند. پترکوتس هم در تمام آن مدت خونه دل خورد و از خدا خواست تا آن توان و نیرو را به او عطا کند که بتواند در این بدشانسی و بدبیاری دوام بیاورد. در حالی که از خشم لبریز بود با خود قسم خورد ثروتی را که باران از آنها گرفته بود بار دیگر به دست بیاورد. تصمیم او انقدر استوار بود که وقتی آرلیان و سگندو پس از هشت ماه از آخرین پیام او به خانهاش آمد، او را مانند افراد دیگر شهر به رنگ سبز خزه ها، پریشان حال و با چشمان گود افتاده و با پوستی مبتلا به جرب دید که دارد روی تکه های کاغذ اعدادی را می نویسد تا بختازمایی را دوباره راه بیندازد. آرلیان سگندو بحت زده شد. او چنان لاغر و سر از وضعش چنان کثیف شده بود که پتروکوتس فکر کرد شخصی که به دیدنش آمده عاشق تمام عمر او نیست بلکه برادر دو قلویش است آرلیان سگنده گفت مایی دیوونه شدی چی رو به خونارو؟ رو پتروکوتس در جواب از او خواست تا نگاهی به او خواب بیندازد ارلیانو سگندو قاطری را در اتاق دید که پوستش شبیه صاحبش از لاغری به روی استخانهایش چسبیده بود اما حیوان هم مانند صاحب خود ثابت قدم و مسمم نشان میداد. در در آن مدت پترکوتس خشم و غضب خود را به خوردان حیوان داده بود نه علف یا ریشه پترکوتس حیوان را در اتاق خواب خود پناه داده بود و ملافه های حریر و فرش های ایرانی، روکش ابریشمی پرده های مخملی و همینطور رومیزی های ملیل دوزی شده و منگوله ابریشمی عبریشمی تخت خواب را به خورد قاطر داده بود تا زنده بماند.